اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ هدایت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي حَدَانَا لِحَازَا و ما کنا لنحتدی لولا انحدان الله ستایش الله را که ما را بدین راه هدایت نمود و اگر الله ما را هدایت نمیکرد ما خود هدایت یافتیم با قسمت یازدهم از مجموع گفتگوهای صوتی طریق هدایت در خدمت شما شنوندگان گرامی هستم این مجموعه گفتگوهای صوتی به بررسی آیات قرآن میپردازد در این راستا برنامه 11 رو به موضوع گواهی دادن زن اختصاص دادم. همواره موضوعیت گواهی دادن زنان در محافل و مجالس مذهبی و غیر مذهبی مورد بحث و مناقشه بوده. مسئله شهادت دادن زنان بین اهل مذاهب بر مبنای شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد عنوان گردیده در توجیه اینکه چرا ارزش شهادت زن و مرد نابرابره سخنان متفاوتی گفته شده از جمله اینکه چون زنان در بعد عاطفی برتر هستند و به جهت قلبی عاطفه و هیجانات و نیز فراموشی در امور شهادتشون اعتبار کمتری داره امام بخاری یکی از محدثین به نام اهل سنت و جماعت پیرامون این مهم در کتاب خودش این گونه متن نموده ابو سعید خضری میگوید رسول الله روز عید قربان یا عید فطر به سوی مسلا رفت در آنجا سری به زنان زد و خطاب به آنان فرمود ای گروه زنان صدقه دهید زیرا شما را بیشترین اهل جهنم دیدم پرسیدند چرا رسول الله پیامبر اکرم فرمود به خاطر اینکه شما به کسرت نفرین میکنید و از شوهرانتان نافرمانی نموده و ناسپاسی میکنید و هیچ ناقص عقل و دینی نمیتواند مانند شما مردان عاقل را فریب بدهد ارز کردند ای رسول الله نقصان عقل و دین ما چیست؟ فرمود مگر نه این است که گواهی یک زن نصف گواهی مرد محسوب میشود. شود گفتند بلی رسول الله فرمود این خود نشانگر نقص عقل شماست آن حضرت فرمود مگر نه اینکه در ایام حیز و قاعدگی نماز نمی و روزه نمیگیرید گیرید کردند کردن بلی رسول الله فرمود این هم دلیل بر نقص دین شماست. کتاب مختصر صحیح بخاری مسئله سی باب شش حال ختمشی الله متعال به مسلمین پیرامون مسئله گواهی دادن رو با هم بررسی کنیم. ملاک حقانیت در دیانت اسلام اداء شهادت عادلانه است نه جنسیت افراد سوره مائده آیه هشت یا ایها الذين آمنوا كونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمن شنآن قوم على ان تعدلوا اعدلوه و اقرب لیتقوه و الله و الله این الله خبیع بما تعملون ترجمه آیه ای که ایمان آورده اید برای الله به داد برخیزید و به ادالت شهادت دهید و البته نباید دشمنی گروهی شما را بر آن دارد که ادالت نکنید ادالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است و تقوای الهی پیش سازید که الله به آن انجام می دهید آگاه است. قرآن مبین گواهی دادن عادلانه حتی با وجود زیان شخصی رو بر مسلمین توصیه و امر میکنه. سوره نسا آیه 135 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين ذي شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إياك غنيا أو فقيرا فالله أولاهما فلا تتبعوا الهوى أن تعذلوا و این تلو او این الله کان بما ترجمه آیه ای کسانی که ایمان آوردید پیوسته به ادالت قیام کنید و برای الله گواهی دهید هرچند به زیان خودتان یا به زیان پدر و مادر و خیشاوندان شما باشد اگر یکی از دو طرف دعوا توانگر یا نیازمند باشد باز الله به دو از شما سزاوارتر است پس از پی حوست نروید که در نتیجه از حق عدول کنید و اگر به انحراف گرایید یا اعراز نمایید قطعاً الله به انجا انجام می دهید آگاه است در آیات 6 الی 9 سوره نور الله تعالی عنوان می فرماید اگر مردی به همسر خودش نسبت زنا رو بده و هیچ گنه شاهد و گواهی نباشه در این شرایط نیز شهادت گواهی دادن مرد بزن در دادگاه صالحی اسلامی شورای داوران با هم برابر خواهد بود سوره نور آیات 6 الی 9 والذین يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا آم. إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إذا كان من الكاذبين وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ والخامسة أن غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا غَضَبَ الله عليها إن كان من الصادقين. ترجمه آه. و کسانی که به همسران خود نسبت زنا می دهند و جز خودشان گواهانی دیگر ندارند هر یک از آنان باید چهار بار به الله سوگند یاد کند که او قطعا از راستگویان است و گواهی در دفعی پنجم این است که شوهر بگوید لعنت الله بر او باد اگر از دروگویان باشد و از زن کیفر ساقط می شود در صورتی که چهار بار به الله سوگند یاد کند که شوهر او جدا از دروغویان است و گواهی پنجم آنکه خشم الله بر او باد اگر شوهرش از راستگویان باشد در آیه 282 سوری بقره که پیرامون معاملات غیر نقدی صحبت میشه و در این موارد نیز احتیاج به شهود هست گواهی زن و مرد با هم برابره سوری بقره آیه 282 يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى أَجَلٍ مسمى الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يयकتب كاتب ان يكتب كما علم الله فليكتب وَالْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَالْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْغَسْ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِذْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَيُّ مِنْ اللَّهِ وَفًّا بِالْعَدْلِ مِنْ فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان لمن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى قصط عيد الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا توتابل إلا أن تكون تجارا حاضرة تديونها بينكم تديونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تقتلوها وأشهلوا إذا تلا ولا يضار وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ ترجمه آگه ای که ایمان آوردید هرگاه به وامی تا سررسیدی معین با یک دیگر معامل کردید آن را بنویسید و باید نویسندی صورت معامله را بر اساس ادارت میان شما بنویسد و هیچ نویسندی نباید از نمیشتن خودداری کند همانگونه و به شکرانی آن که الله او را آموزش داده است و کسی که بدهکار است باید املا کند و او بنویسد و کسی که بدهکار است باید املا کند و او یعنی نویسنده بنویسد و از الله که پروردگار و او تقوا پیش سازد و از آن چیزی نکاهد پس اگر کسی که حق بر ذمه اوس سفی یا نادان است یا خود نمیتواند املا کند پس ولی او باید با رعایت ادالت املا نماید و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید پس اگر دو مرد نبودن مردی را با دو زن از میان گواهانی که به ادالت آنها رضایت دارید گواه بگیرید تا اگر یکی از آن دو زن نپیوست زن دیگر وی را یادآوری کند و چون گواهان احضار شوند نباید خودداری ورزند و از نوشتن بدهی چه خرد باشد یا بزرگ ملول نشوید تا سررسیدش فرا رسد این نوشتن شما نزد الله عادلانهتر و برای شهادت استوارتر و, و برای اینکه دچار شک نشوید به احتیاط نزدیکتر است مگر آنکه داد و ستتی نقدی باشد که آن را میان خود دست به دست برگزار میکنید در این صورت به شما گواهی نیست که آن را ننویسید و در هر حال هرگاه داد و ستت کردید گواه بگیرید و هیچ نویسنده و گواهی نماید زیان ببیند و اگر چنین کنید از نافرمانی شما خواهد بود و تقوای الهی پیش سازید و الله بدین گونه به شما آموزش میدهد و الله به هر چیزی داناست در این آیه مقصود معاملات غیر نقدی مدت داره که فرد یا بدهکار میشه یا طلبکار بنابراین بعد از مدتی ممکنه اصل معامل فراموش بشه به خاطر همین موضوع الله متعال تأکید میکنه که این نوع معاملات رو مکتوب بکنید و با انایت به اینکه مطابق رحنمود الهی گواهی دادن دو نفر در جلسه دادگاه الزامی است در ادامه آیه متذکر میشه شه انت ظل فتذکر احده احداهما تا اگر یکی از آن دو زن نپیوست روی نیاورد کنارگیری کرد زن دیگر به یاداوری کند یعنی با کنارگیری یکی از زنان برای ادای شهادت یک زن باقی میمونه در این راستا شهادت زن و مرد حتی در زمینه معاملات غیر نقدی هم با هم برابر میشه. نتیجه اینکه با استناد و استشهاد به آیات متعدد الهی گواهی دادن زن و مرد در همه زمین ها با هم برابر بوده و ادعای اهل مذاهب پیرامون عدم برابری هیچ گونه سنخیتی با فرامین و دستورات الهی در متن مقدس قرآن کریم به عنوان موسق تنین مرجعیت اسلام نداره در آخر از اینکه به سخنان بنده پیرامون موضوع شهادت دادن زنان گوش کردید کمال تشکر رو دارم پروردگارا بعد از آنکه که ما را هدایت کردی دلهای من را دست خوش انحراف مگردان و از جانب خود رحمتی بر ما ارزانی دار که تو خود بخشایشگری و السلام علیکم و الله و